بسم الله الرحمن الرحیم از بیت 65م تا 72 دوم مسئله جدات توضیح میده و با این مسئله دیگه مس فروس بحثشون بحثش تموم میشه. در درس قبلی در بیت 63م گفتی بود واسد و فرض و جدته جدته في النسب كانت یک شیشون فرض جده نسبیست زمانی که یک نفر باشه یعنی کامل یک شیشون مالشه حالا چه, یک چه پدری باشه چه مادر بزرگ چه مادری باشه اینجا میاد زمانی که زیاد باشند خب در بعضی حالات تقسیم میشه در بعضی حالات نزدیکترین دورترین و ساقط میکنه و این حالات مختلف رو توصیح میده ميجي وان تساوى نسب نسب الجداتي وكنا كلهن وارثاتي فالصدسو بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية ميجي اگر نصاوى بود نسب جدها ان درجشون برابر بود وهمشون هم از جدهاي بودند که ميبردن، ميبوردند على این زابط در آخر ميجي كي جده ارس نميبورد و اگر مساوی بودند نسب جده ها و همهشون از وارثات بودند پس یک شیشم بین آنهاست به شکل مساوی در قسمتی که عادلانه هست و شرعی. خب. شخصی فوت کرده یک مادر مادر داره؟ و یک مادر پدر داره و یک؟ برادر داره یا یک امو داره اینجا یک شیشمو رو به هر دوتا جده میدیم باقی مانده رو به اون امو میدیم که عصبه هست این یک ششم رو بین هر دوتا به شکل مساوی تقسیم میکنه. و انتکن قربا قربال حجبت ام ابن بعدا و وسطا سالبت اگر مادر بزرگ نزدیک مادر بزرگ از جهت از طرف مادر بود و انتکن كن قربا لام اگر مادر بزرگ نزدیک از طرف مادر بود حجبت ام ابن بعدا مادر پدر درجهش دورتره رو ساقت میکنه حاجبش میکنه محجوبش میکنه و صد سن و یک شوشیم رو میبره بایل شخصی فوت کرده مادر مادر داره و مادر بزرگ مادری داره یعنی مادر مادر و یک مادر بزرگی داره از طرف پدرشه فاصلش دور تره یعنی مادر پدره پدر این مادره مادره اون مادره پدره پدر اون فاصلش دورتره اینی که از طرف مادره اونو ساقط میکنه و یک ششومو میبره این بود بیت 67 اما انتا کن قربه لامه حجمد اما امین بوده و سودسن سلبه و انتا کن بالعکسی فالقولانی فی کتب اهل العلم منصوصانی اگر برعکس بود اگر چی بود؟ برعکس بود یعنی مادر بزرگی که از طرف پدر نزدیکتر بود و مادر بزرگی که از طرف مادر... مادر دورتر بود فاصلهش آیا اینجا مادر بزرگ پدری یعنی مادر پدر مادر مادر مادر رو ساقط میکنه میگه اینجا فالقولان اینجا دو زریه وجود داره در کتب اهل علم که وبعدا لا حسابا منصوب حسابا لا تسقط البعده على الصحيح مجه ساقط لميكونه يا ساقط دور دورتره تبقى قول الصحيح اودي كه اس طرف مادر وا فاصلهش دورتره به اسيله اودي كه نازكترا وا اس طرف پدر ساقط نمشه طبق قوله سحیه، واتفق الجل على التصحيحه، وجل أكثريات اتفاق كردا عن بر همین نظریه. بس أكثر شافییه همین نظر ودارند. وتسقط البعد بذات القربة خبرین جا. قا, قاعده بي, بيت افتادوموند و كل من ادلت بغير وارث فماله فماله حظ من الموارث چه مادر بزرگای ارث نمیبرند تو بيت 71 با یک ضابطه و یک یو you نو know, توضیح میده قاعده جزئی که بهش میگه ضابطه میگه هر مادر بزرگی که به مایت وصل بشه با وارثی با شخصی که ارث نمیبرد اون مادر بزرگ فما لحظون من بهره ای از ارث ندارد مانند چی؟ مانند مادر پدر مادر مادر پدر مادر چون پدر مادر پدر بزرگ مادری ارث نمیبره حالا اگه مادری هم داشته باشه ارث نمیبره چرا؟ چون با شخصی به میت وصل است که اون شخص ارث نمیبرد بیت به هفتاده همین میگه میگه و کل من ععدلت به غیرواری. هر مادرربرگی که وصله بشه به میت به غیروارث با شخصی که واررس نیست. فمالها حظل من البواری حض و صهمی و نسیینی از ارث ندارد بعد ذاابت رو بیاد داشته باشیم. خب بهت هفتادکن باز هم توضیح میده مسئله دیگر رو، میگه که و تسقط البعد بذات القربی و دورتر با مادر بزرگ دورتر با مادر بزرگ نزدیکتر ساقط میشه البته زمانی که از یک جهت باشه مثلا شخصی فوت کرده مادر مادر داره و مادر مادر مادر داره همه اینا ماشاءالله زنده هستند مادر مادرش زنده هم هست مادر مادر مادرش هم ماشاءالله هنوز زنده هست خب این شخص مادر مادرش ارث می ولی یعنی مادر مادر مادرش ارث می ببره ها همین رو داره میگه میگه واتسقط البعده بذات القرب دورتره با نزدیکتره ساقط میشه فالمذهب الاولا در مذهب اولا فقل در مذهب اولا اینجا یک اختلاف وجود داره خب اگه از طرف مادر باشه که اتفاقی هست نزدیکتره دورتره رو ساقط میکنه. ولی اگر از طرف پدر باشه اینجا دو حالت وجود داره. اینجا چند حالت وجود داره دو حالت وجود داره. یکی این که مادر پدر یکی مادر مادر پدر آه؟ مادر پدر مادر مادر پدر اینا هر دوتا از یک جهت مادر پدر مادر مادر پدر مادر پدر و مادر مادر پدر هم جهتشون یکی همین که اون مادر مادر پدر مادرش زنده است این به اتفاق ساقط میشه حالت دیگه هم وجود داره مادر پدر زنده بشه و پدر. مادر پدر پدر که این مادر مادر بزرگ این مادر بزرگ نیست در این حالت اختلاف وجود داره که طبق مذهب اولا ساقط میشه و تسقط به بذات القرب فیلمذ همél اولا همین حالت پدری رو میگه گرنه اون مال مادر در اتفاق نزدیکتره دورتره رو ساقت میکنه و در پدر دو حالت وجود داشت یکی مادر پدر یکی مادر مادرش یعنی مادر مادر پدر که اینجا هم نزدیکتره دورتره رو ساقت میگرد حالت بعدیش این بود که مادر پدر و مادر پدر پدر میبینید؟ مادر خود پدر و مادر پدر پدر که اون مادر پدر که دورتره از طریق این مادر بهش وصل نمیشه اینجا اختلاف وجود داره میگند که قول اولینه که ساقط میشه و تس قطلبو ب... خب. فقل لی حسبی تا اینجا کار اومد فقل پس بگو ای این کتاب لی به من حسبی که مرا بس است یعنی در موردم مسائل أصحاب الفروز بشكل كافي سخن رفته وقد تناهت قسمته الفروزي ميجي تا إنجا يكار تمام شد تقسيم سهميها بين مستحقها مستحقها من غير إشكال ولا غموز بدون إشكال بدون ملتبس بدون مسائل وبدون پوشيدگي بدون پوشيدگي غموز بال تا إنجا كار ميجي تمام شد فس درين درس ما بحث ما در بزرگها رو هم خاندیم